بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشندی مهربان حامین حامین عین سین قاف عین سین قاف کذالک یوحی ليك والى خداوند عزیز و حکیم با تو و پیامبرانی که قبل از تو بودند بحث میکند له ما و ما في الارض وهو العليم اللوقين <تصفيق> آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه و بزرگ کرد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 پرشتگان پیوسته وسط و حمد پروردگار خود را به جا می و برای کسانی که در زمین هستند استغفار می کنند آگاه باشید خداوند آمد زندب و مهربانه والذین من دونه اولیاء الله و کسانی که غیرت خدا را ولی خود انتخاب کردند خداوند حساب همه اعمال انها را نگه می‌دارد و تو مجبور نیستی که انها را مجبور به قبول حق کنی و كذلك اوحينا اليك طمأنا نوبيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوما الجمع لا ريب فيه فریقم في الجنة و في فی با قرآن عربی بر تو وحیه کردیم تا ام القرا و کسانی را که آنها آن هستند انداز کنید و آن را از روزی که همه خلاویت در آن روز جمع می شوند و شک و تردید در آن نیست بسر سارید همان روز که گروهی در بهشتند و گروه در آتش ولو شاء الله لجعلهن امه واحده ولا سيندخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من وارث ولا نصيب فاغر خدا <تصفيق> ميخاوس كما ينهار امه واحده قرارا امتد اما خداوند هر کس ساده خواهد در رحمتش وارد میکند برای سالمان ولی و یاورنی است ام امن تا من دونه او فالله هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر آیا آنها غیر خدا را ولی خود برگزیدند در حالی که ولی تنها خداوند است و اوست که مردگان را دلده می میکند و اوست که بر هر چیز توانا و لقد فتنت من شيء فحكمه لله الله, الله ربيا علئ و در هر چیز اختلاف کنید داوریش با خدا این است خداوند پروردگار من بر او تبکل کردم و به سوی او باز می کردم. فاطم السماوات والاقد جعل لكم من أمفوتكم أزواج ومن الانعام ازواجا يزراءكم فیه لیس کنی کنی و هو الزمیع البخیر او آفرین اندهی آسمان ها و زمین هست و اجلس شما همسران برای شما پرارداد و جاست های اجلس ها سایان آفرید و شما را به این وسیله تکثیر می کند اما او چیزی نیست و او شنوا و بینار. لهو مقاليد السماوات والارض يرسل للظالمين يشاء ويقيد انه بكل شيء عليم كل آسمان و بر از آن او روتی را برای هرکس بخواهد گفترش می دهد و برای هرکس بخواهد محدود میسازد او از همه چی آگاه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 فرقوا فيه كبراء المشركين <سؤال> <سؤال> ما <تضع> تدعوهم إليه الله يرتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينیب أوهين رابراو يشمع تشريع كبنو توچك و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سپارش نمودیم که دین را بر تا دارید و آن تفرقه ایجاد نکنید خداوند هر کس را بخواهد بر می گذیند، و کسی را که به سوی او باز گردد هدایت می کند من بعد ما وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّنْ لَقُضِيَ <تصفيق> و این جویی به خاطر انحرافات حق بود، و اگر فرمان سوی فروتگار در نشده بود که آنها تا سرآمد معین زنده و آزاد باشند، خداوند در میان آنها داوری کرد و کسانی که بعد از آنها وارثان کتاب شدند، از آن در شک و تردیدند، شک سو امبا بینی و سوء زن فلذلك فدع واستفن كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المطير تنيف أنهار بسويء الآزين باغد إلا في دعبتكم وأنتم أنك المأمور فدئي استقامتنا و تبا و ها آنان پیربی مکن و بگو به هر کتابی که از سوی خدا نازل شده ایمان آبت و معمودم در میان شما عدالت کنند. خداوند پردار ما و شما نتیجه اعمال ما از آن ما و نتیجه اعمال شما از آن شما. خصومت شخصی در میان ما نیست و خداوند ما و شما را در یک جا جمع می باقوا قشت حما والذين يحاجون في الله من بعد استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد انهاك باري خدا بعد استزیر افتن دعوت او مجادل میکنند دلیل آنها نزد فرابکارشان باطل و بی اصافه با قذب بر آنها و عطاب شدید از آن آنها آن الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدریک لعل الساعة قريب خدابند ذاتی که کتاب را به حق نازل کرد و میزان را اما تو چه میدانی شاید ساعت قیام قیامت نزدیک باشد؟ یستعجل بها ها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنون مستقون منها و یعلمون انها الحق ال این آنها که به قیامت ایمان ندارند دربار آن شتاب میکنند کنند بر که ایمان اند، پیوسته با خوف و حراف مراقب آن هستند و میدانند آن تکف آگاه باشید آنها که در قیامت تردید میکنند در گمراهی امیق حاتم الله لو بعباده بعذابه يذق من يشاء وهو القوي العزيز خدابند نسبت به بندگانش له دارد هر کس را بخواهد خواهد روزی میدهند با او قوی بخشکاست نافذیدان من كان يريد حرص الآخرة نزل له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصير تسيك زراعة آخرتها بخواهر بأو بركت ميدهين و بر محطولش می و آنها که فقط کشت دنیا را می طلبند کمی از آن به آنها می دهیم اما در آخرت هیچ نصیبی ندارند ام لهم فرکاء لهم من الدین ما لم یعذن به الله ولولا کلمت الفصل قضی بينهم و این آیا معبودان دارند که آین برای آنها به ازن خداوند تشریع کردند اگر مهلت مقرر برای آنها نبود در میانشان داوری می شود و برای ظالمان عذاب در ناکی و والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير برنوطتن جرنبي نيكس اعمالك سقبی ناکند اما آنها را فرو میگیرد اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند در بهترین باغهای بهشتند و هرچی بخواهند نزد پرباردارشان برای آنها فراهمند این هست فضل بزرگ ذاتکالذی <تصفيق> یبشیو الله و عباده الذین آمنوا و الصالحات قل این همان چیزی که خداوند بندگانش را که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند به آن نوید می‌دهد به من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی‌کنم جز دوست داشتن نتلیکانم و هر کس عمل نیکی انجام دهد بر نیکیش می چراکه چرا که بیگمان خدا باند آمرتندب و شاک گذارم ام یقولون افترا الله کذبا فا این یشئ الله یختم علی قلبک و یمفو الله الباطل و یحق الحق بکلماته انها آنها گویند او بر خدا دروغ بسته ولی اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر می زند و باطل را محو می کند و حق را به فرمانش جا میسازد ساتد چرا که او بی گمان و آنچه در درون دلها آگاه او ذات ایست که توبه را از بندگانش می فسیرد و گناهان را می بخشد و آنچه را انجام می دهید می داند و یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات و یزیدهم من فضله و الكافرون لهم عذاب شديد. و تبخاست کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، اجابت می کند، و از فضلش بر آنها می اما برای کافران عذاب شديدی. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولا تنزل بقدر ما يشاء إنه لإعذابه قبي وبصير هرگاه خداوند روزی را برای بندگانش بسات بخشد در زمین تغیان بسطاً می پس به مقداری که می خواهد ناصل می کند که او نسبت به بندگانش آگاه و بینا او داتیست که باران ناصع را بعد از آن که معیود شدند ناصل می کند و دامنه رحمت سیش را می گستراند و او و من آیات خلق السماوات والأرض وما بشتتیه ما من داب و هو على جمعه اذا يشاء قدیر بس از آیات اوز آفرینش آسمان و سمين و آنچه از جنبندگان در آنها خالق و منتشر نموده و او هرگاه بخواهد قادر بر جمع آنها و ما اقابت من مصیبت فبما کتبت ایدیکم و یعفو عن كثير. هر مصیبتی به شما رسد بخاطر اعمالی که انجام داده اید و بسیار ایرانی افت می کند وما انتون بموجدین فی الارض وما لکن من دون الله بمولی ولا نقید و شما هرگز نمی نید در زمین از قدرت خدا باند فراه کنید و غیر از خدا هیچ ولی بجابری برای شما نیست. ومن آيات الجوارب البحر كالأعلام أتناشئ في اجتهادي همكمها كدر دريا در حركات يجئ سير ريح فيضل النرا واكد على ظهر إن في ذلك لا آيات لكل خبر شكو اگر اراده کند باد را ساکن می سازد تا آنها بر پشت دریا متوقف شوند در این نشانه برای هر صبر کننده شاک یا اگر بخواهد آنها را به خاطر اعمالی که سر میشینانش مرتکب شده اند نابوت میسازد و در این حال بسیاری را میبخشد و تا کسانی که در آیات ما مجادله میکنند بدانند هیچ پناهگاهی ندارند فما اوتیتم من شيء فمتاع الحیات الدنیا وما عند الله خیر و للذين آمنوا آمنون وعلى ربهم يتوكلون. آنچه به شما عطا شده متاع زودگذر زندگی دنیا و آنچه نست خداست برای کسانی که ایمان آوردند. می کنند، و بدر رفتارشان توبتل میکنند بهتر و پایدارتر است. والذین يجتنبون كبائر الذنوب والفواحش واذا ما غضبوا يغفرون. همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می ورزند و هم دامی که خاشمی می شوند، عفو می کنند. وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا صَلَاتَ وَأَمُرُهُمْ سُورَ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ و آنها که دعوت فرورکارشان را اجابت کرده و نماز را برپا با داشته و کارهایشان به طریق مشبرت در میان آنها صورت میگیرد. دیرد آنچه با آنها روزی دات این انفاق می والذين إِذَا أَطَابَهُمُ الْبَغُّهُمْ يَنْتَقِرُونَ وَا آنها که هر گاستمی با آنها رسد تسلیم ظلم نمی و یاری می کلبند وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فمن عفا وأصلح فأجره این نهولش عنوانین و قی تر مجازات همانند آن است و هرکس افو اصلاح کند اجر پاداش او با دا خدا و بیگمان خداوند ظالمان را ندارد بالا برین تا فقا دوقول با کچی که بعد از مظلوم شدن یاری طلبد ایاد فرونی انما السبی علی الذين یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم ایاد مجازات بر کسانی است که با مردم ستم می کنند و در زمین بنا حق ظلم را دارند. برای که آنها عذاب در ناکی ولمن صبر وبر این ذالک لمن عزم الامور اما کسانی که شکر بایی کنند این از کار خواهی پر اردشه ومن یضلیل الله فما له من ولی من بعده و تر الظالمین لما رأو العذاب یقولون هل الى مرد من سبیل را که خدا گمراه کند ولی به بعد از او نخواهد داشت ظالمان را میبینی که وقتی عذاب الهی را مشاهده میکنند میگویند آیا راهی به سوی بازگشت وجود دارد وَتَرَاهمْ يَرْدُونَ عَلَيْهَا قَاصِحِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِضٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا مقیم. و آنها را می بینی که بر آتش عرضه می شوند. در حالی که از شدت مطلت خاشه اند و زیر چشمی و آن نگاه می کنند و کسانی که ایمان آورده اند میگویند دیان واقعی آنها هستند که خود به خانواده خیش را رود قیامت از ده ساده اند آگاه باشید که سادمان در دا عذاب داگه و ما کان لهم من اولیاء یعنصرونهم من دون الله و من یضلیل الله فما له من سبیل آنها جز خدا اولیاء و یابرانی ندارند که یاریشان کند برکت را خدا گم را سادد را نجاک برای اومید اذا تجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم ممن لجئ يومئذ وما لكم من نكير اجابت كنيد دعوت پروردگار خود را پیش از که روزی فرا رسد که دیگر بازگشت برای آن در برابر اراده خدا نیست با تمام نَفَنُونْ كَوْ حِداريد وَنَمَضَافَة فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ منا رحمة فَرِحَ بِهَا وان تصلهم سئة بما قدمت یدیهم فن النسان فور و اگر آن ها رویگردان شوند ما تو را آنها قرار ندادهیم وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت است و هنگامی که ما رحمتی از سوی خود به انسان میچشانیم مغرور و غافل می شود با اگر بلاوی بخاطر اعمالی که انجام دادند با انها رسد با کفران می قطافند لله ملک السماوات <سؤال> والأرض یخلک ما يشاء یا بل من یشاء اناثا و یا بل من یشاء الزکور او زوجهم ذکران مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن خدا هرچی را بخواهد می آفریند و به هر هرکس اراده کند دختر می بخشد و به هر کس بخواهد پسر یا اگر اراده کند پسر و دختر هر دو به آنها می دهد و هرکس را بخواهد عقین می کتارد که او دانا و تبانا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو بوراء حجابا أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم شایسته هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن بگوید مگر از طریق بخید یا از برای حجاب، یا رسولی می فرستد و به فرمان او آنچی را بخواهد بخش می کند چرا که او بلند مقام و حکیم است. و کذالک اوحینا ایلیک من أمرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الیمان ولکم جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وانک لتهدی الى صراط مستقیم همان گونه که بر پیشین وحیه فرستادیم بر تو نیز روحی را به فرمان خود وحیه کردی تو پیش از این نمی کتاب و ایمان چی ولی ما آن را نور قرار دادیم که با وسیله آن هر کس از بندگان خیش را بخواهیم هدایت می کنیم و تو مسلمان به سوی راه مستقیم هدایت می کنی. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله تصير الأمور راه خداوندی که تمامی آنچی در آسمان ها و آنچی در زمین است از آن او آگاه باشید با کشته به سوی خدا.